بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بسم الله الرحمن الرحيم بندقاني أزيز وقران قادر وقمانداني بسيار بسيار خوب برنامه عقیده در قرآن و سنت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدوارم که الله جلجاله همه شما را صحت داشته باشه و عزت و آبرو و سعادت دنیا و آخرت در نصیب همه ما الله جلهو جل جل بگردانه به این میدواری باز هم خدمت شما موحدین و دوستداران قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم برنامه دیگی از برنامه های قرآن و سنت خدمتان تقدیم میکنم دوستان عزیز در برنامه امروزی موضوع نواقذ یا شکرنده های ایمان خدمتان تقدیم میکنیم که در برنامه قبلی درباره نواقذ یا شکننده های ایمان به شکل مقدماتی صحبت کردیم که هر چیز شکننده داره و او را از بین میبره ایمان یک انسان چی از بین میبره آیا اگر یک نفر مسلمان شد در خانه مسلمان پیدا شد مادر و پدرش مسلمان بود یا کلمه خاند اقرار به زمان تزیق به قلب کرد ای حتما تا روز قیامت تا روزی که فوت میکنه حتما ای مسلمان خواد بود و یا ای که بعض اشتباهات و غلطیها و بعض کارهای زش سبب ازی میشه که ای از ایمان خارج شود ای ایمان هم شکلنده هایی داره که یک انسان میشه شود، مشرک شوه و کافر شود. از جمله این نواقص ایمان یکی شرک در عبادت الله جللا جلله بود. خلاصه شرک خادر عبادت الله جللا جلله باشه، خادر نامهای الله جللا جلله باشه، خادر, خادر صفات الله جللا جلله باشه، خادر قانون الله جللا جلله باشه. شرک به هر شکلی که باشه. سبب میشه که انسان از دایری ایمان برایه یک فعل از افعال الله جلاله جل رو برای یک مخلوق میتن الله خلق هست این از مخلوق بشه و دختر میخواه ای سبب نقص در ایمان از میشه ایمان ازیره نه مشکنانه و ای انسان مؤمن واقعی نیست این شرک آورد پس شرک چرا؟ الله جل جلاله جل که این الله لا یغفر ان یشرک به الله هرگز نمی یقینا باور داشته باشه. ان نه. یقیناً یعنی باور داشته باشه که الله شرک نمی بخشه. و یک فرما دون ذلک هلکه یشا اما پاینتر از شرک گناه های و کبیره چرا اینه می بخشه؟ لیمه بر کسی که خواست. شرک مستقیما جنایت از در مقابل خالق یکتا. شرک تصادم است با اصما و صفات و عبادت الله جل جل از این خاطر ایره ارگز الله جل جل جل بسیار خوب است که شرک بفاهمیم و از شرک دور بکنیم که در برنامه های بعدی انشاءالله پیرامون شرک و اقسام شرک بحثای مفصل خواهد داشتیم دومین چیزی که نقص کننده است باد از شرک که ایمان انسان را نقص میکنه و از بین میبرن او چیست؟ واسطه قرار دادن است بین خالق و مخلوق مشرکین چرا مشرک و کافر و گفته می شدن مشرکین علتش چی بود اینا می گفتن ما با وجود الله باور داریم ولی این من خلق از سماواتی ولا از سوال میکردی که آسمان و زمین که خلق کرده مشرکین میگفتن الله خلق کرده ابو جهل با وجود الله و بایی که الله خالقش است با او باور داشت ابو لهب به یه باور داشت لکن مشکلشان شنده چی بود مشکل شنده ای بود که اینا رفتن در بین خود و در بین خالق خود یک مخلوق را داخل کرده بدن ایکی هست این هوبل هست چرا پیش از این میری؟ می فی دوست خدا هست من هستم من باید پیش از, از این برم و در شریف وقتی کس بهشان پرسان می شد خیلی وقتی که تو الله را مشنسی چرا پیش از این میری؟ می که ليقربونا الى الله تا اینا ما رو به الله قریب بسازد یا سبحان الله ای شد پس بین خود و بین خالق خود مخلوق را قرار دادن و به این رکو کردن و به این سجده کردن و به این نظر کردن و به این قربانی دادن سبب شرک از این شد. انسان مسلمان عقیده می داشته باشه که الله بر ما قریب است اذا سأل عبادی عنی وقتی که بنده های ما درباره ما پرسان بکنه و قریب قریب ما به با بنده خود بسیار نزدیک الله با بنده نزدیک است دراهت شریف چی میگه و نحن اقرب اليهم من حبل الورید ما با بنده خود از شاهرگ گردنم هم نزدیک نزدیکتر هستیم الله بما با ما نزدیک است نه نزدیکی مادی که ما العیاذ بالله مثل که یک انسان با انسان دیگه نزدیک میشه الله با علم خود با عظمت خود با قوت خود به این که بیست مراقبت میکنه از هر کسی دیگه برای ما نزدیکتر است پس چرا مستقیما برای به زلجلال رجوع نکنیم بریم به مخلوق دیگه که ایبوت بازماره به با الله چیز کنه آیا اگه ما شرمنده و ریسیه هستم اخوزات زلجلال رحمان و رحیم رحمتش عل عیاض که مشرکین فکر میکنه که ایبوت از خالق کرده بر ما رحمتش بیشتر است عل عیاض بلله ایچه رو ای طرف؟ روسیاگی و شرمندگی تو نظر نمیکنن خاطر ازی که تو مهربانی خالق کمتر از مهربانی ازی مخلوق میدانه ازی خاطر مشرکین این مشکل داشتن ایچ وقت مسلمان بین خود و بین خالق خود واسطی قرار نمیده نه ملائکه را نه پیغمبر را، نه دوستی از دوستای الله را نه کدام سنگ نه کدام چوب هیچ کسی را مستقیما به رب خود که رب جل است ارتباط می پس این انسان مسلمان موحد نیازی نداره که خی, خی اگر یک سوال بکنه ما می خیم خوده به الله قریب بسازم یو برادر الله بر تو قریب است اگر میگه که از نگاه مقام و منزلت خوده به الله نزدیک بسازی الله جل جلاله میگه جد وقت داره. سجده به الله جل جلوه سجدیت نماز نمازت و عبادت تو الله قریب میسازه وست جد وقت خاطر کسانی که بین خود و بین خالق خود مسیحی ها ها چرا؟ میگن ما مسیحیستیم دروغ میگن پیرو مسیح مسیحی علیه سلام نیستد یعنی بن الله جل جله میگه که و قال الله الله عیسی ابن مریم انتا قلت للناس للناس اتخذوني و الهین من دون الله تو گفتی؟ ایسا علیه السلام میگن ای اگر ما گفتم تو خب تو خو از آنچو که در نفس ما هست با خبر هستی؟ من ها گفتم ایشانه ای جبا. در روز قیامت ایسا علیه السلام از کسایی که خودم مسیحی میگن نصرانیها ها از حال بیزاری میکن. محمد صلی اللہ علیه است محمد صلی اللہ علیه است مره بین خالق قرار بده بنده است من با الله من معلم است شما عقیده را فهماندم دین را فهماندم خودت با خالقت دو بجه شو از خواب بخیست نماز بخان سجد بگو پرواردگار بندهی است مستقیمند ذات رحمان است رحیم است ریسی هستی شرمنده هستی هزارها گناه کردی با هزار گناه میتانی که با بارگاه پروردگارت رجوع بکنی خدمتش ما عرض کردیم که چیزایی که ایمان مشکنانه و سبب نقص ایمان میشه اولش شرک بود دومیش واسطه قرار دادن است که یک نفر بین خود و بین خالق خود مخلوقی را داخل بکنن مثل که نصرانی ها مجسمی حضرت علیه علیہ السلام آوردن به ایوازدی که به الله سجده بکنند به مجسمه سجده کردن بودپرستان مجسمه ابراهیم علیه سلام مجسمه اسماعیل علیه سلام آوردن به او سجده میکردن یک تیراد مشرکین قراش آوردن لاتا آوردن، منات آوردن، حبل آوردن چرا به این حبل سجده میکنه؟ گفت ای بسیار شخص خوب بود، دوست خدا بود من هستم، شرمنده هستم، پیش ازی میرم باز ای مره به الله قریب میسازم الله جل جلو امی عملیشان که یا واسطه قرار دادن شرک قرار دادن. گفت که پیشه هیچ کس نره و نبی کریم سسان گفت که لعنت الله سر یهود و نصره که قبرهای پیغمبرهای خدا سجدهگاه ساختند پیش در مقابل قبر پیغمبر در مقابل قبر اولاد پیغمبر در مقابل قبر, قبر شخصیتهای خوب دینی یا سجده و می کردند لعنت الله بر زینا نازل شده است این قرار دادن بین خود و خالق این سبب عظیم شده که ایمان یک انسان نقص شود و از این خاطر حبشی هایی که در قبرها می رفتن بر از اونها رکود سجده می کردن یهودی ها و نصرانی هایی که به قبرهای پیغمبرهای خود سجده می کردن اینا سبب چی شدن؟ که اینا پیغمبر سمیه که لعنت الله سال از این شد سه چیزی که نقص میکنه ایمان یک مسلمانه کسی که قانون هدایت و دستور غیر الله را نسبت به قانون الله برتریت بده. ببینین؟ ای که چی حق است و چی باطل. چی حق است؟ الله تعیین میکنه که چی حق است. چی باطل است؟ الله تعیین میکنه که چی باطل است. چی عبادت است؟ الله تعیین میکنه که ای عبادت است. چی معصیت است؟ الله تعیین میکنه که ای معصیت است. پس امر امر الله است ناحيه ناحيه الله است قانون قانون الله است خوب بده الله تعیین میکنه حرام الله يا أيها النبي ان احللنا لك أزواجك. حتى بر پیغمبر خانه میشه که الله جل جلاله و وقت که اسپیش فتوا قل الله يفتيكم الله بر فتوا میده و این درست است این غلط است از این خاطر برادرای عزیز خواهرای محترم کسی که قانون غیر الله را میخواه که جاگزین قانون الله بسازه ای اصفی ایمان خارج میشه و ایمان از این مشکنه چرا؟ ببینید در آیت شریف چی میگه اعوذ بالله من شیطان رجیم فمن یکفر بالطاغوتی و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروت الوسقا پس کسی که و من یک فر پس کسی کافر شد به تاغود تاغود کی هست فران تاغود بود چرا؟ بخاطر زیمی که احکام الله را قبول نکنین حکم ما قبول بکنین حاکمیت بر الله نباشه حاکمیت بر ما باشه نمرود تاغود حاک... بود و هر کسی که بخواهی که قانون غیر الله را ترجیح به قانون الله جل جلوه و هر کسی که بخواهی که قانون از او بیوز قانون الله جابجاش به جا شده ایره میگن و کسی که از این تواقید پیروی میکنه ای از دایره ایمان خارج میشه و ما یکفر به تاغوتی و یعنیم بالله اول باید به تاغوت کسی که حکم غیر الله را میخواه تدبیق بخور و او کافر شوی باز تو میتنی که یعنیم بالله ایمان باره س اینی نفر میگن فقط استمسک بالعروت الوثقا عروت الوثقا قرآن هزی مشان اینی انسان است که ای واقعا به قرآن باور داره و قرآن ایمان داره طاغو توسو کرد احکام غیر الله را دور کرد احکام الله جل جلو را تطبیق میکنه بعد زبا احکام الله جل جلو ایمان داره ازی خاطر وما یکفر به ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسقى إنه إنسان اسكي إيمان وعقيدية قرآني دار اما يكسا يدقيك بدروخ ألم ترأي للذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويريدون, ويريدون أن يتحكموا إلى الطاقود سبحان الله، الله صراحة بيان ميكناك كسانكي قمان ميكناك ما إيمان دارين بالله وروز قيامات یوریدون چی میخواین؟ ای تحاکم ایلی که حاکمیت قانون قانون باید کی بسازه؟ طاغوت کسی که زد قانون الله قانون ساخته او رو میگن این میگه زعم میکنن گمان میکنن که ما ایمان داریم برلد. یا ایمان ندارن ایمان ندارن الله گفته که یا گمان میکنن که ما مؤمن هستیم چارمی نقص کننده از نواقض ایمان است؟ کسی که مشرک کافر ندانه. او کسی که بغیر غیرالله سجده میکنه، بعضی کسان امروز پیدا شده میگه که والله حال ادیان حق، ادیان حق میگه کل ادیان حق است. او که بود پرستش میکنه میگه حق است. او که با مجسمه یسای مسیح ساخته به دروغ بر او سجده میکنه میگه وام حق است. او که قانون غیرالله را تطبیق میکنه میگه وام حق است. پس یا فکر میکنن که تمام ادیان تمام دنیا حق است از این خاطر کسی که ادیان باطل ادیانی که او شرک است و او کسی که به مخلوق رکوع و سجده میکنه اون کافر ندانه پس خودش رضایت به کفر داره که هاث فلانی پیشه بت سجده کرد فلانی بر شخص سجده کرد به نام مخلوق رکوع و سجده کرد پروا نداره مشکل نداره وقتی که مشرک مشرک ندانه خودش هم یکی است سخنایی بسیار خطرناک است متاسفانه در سخنات رزا به کفر کفر است خیر برادر ایمان معلوم کفر معلوم است در عقیده اسلامی ایا که نعبودو یا پروردگاره خاص به تو عبادت میکنیم چی مانه؟ ایا که نست ایا که نسولی ایا که نرکعو ایا که بر تو رو کو میکنیم بر تو سجده میکنیم پروردگاره بر تو نماز میخانем، بر به نام تو نظر میکنیم، اگر زبحم می به نام تو میکنیم، در مقابل تو میکنیم، بس، امی کل عبادت بعدا اگر کس مخالف زیم میکنه از دایری ایمان خارج میشه و از یا کس دیگه میگه نه ولا خیر است که نفر ها در مقابل بود، در مقابل مخلوق زیر پای مخلوق حیوان زبحم کت چی پروادن، میگن که حتی ای انسان هم از ایمان خارج میشه. پنجمین ناقص از نواقص ایمان چی هست؟ بغض و کینه است به قرآن و سنت. بعضی کسا در آیه شریف میگه ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله. چرا اینی بعضی مردما کافر میشن، بیدین میشن از دایری ایمان خارج میشن؟ به خاطر ازی که با ما انزل الله را خوش ندارن. بعضی کسها میگفتن که ما مسلمان هستیم، ما ایمان داریم. لکن قرآن خوش ما نمیاد. العیاظ بالله پیغمبر خوشمانه میه حجاب خوشمانه میه ریش خوشمانه میه احکام الهی خوشمانه میه تو مسلمان هستی وقت کی چیزا را خوش نداری یعنی هر کسی که به قرآن و به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کینه داشته باشه به با پیغمبر ها کینه و بغض عداوت داشته باشه به با کسانی که قرآن اونا را بهترین مخلوقات حساب کرده صحابه کرام و تابعین کرامه شخصیتای های عالی که در اسلام بودن پیغمبر ها را, را الله جل جل صحابه میگه که لقد رضی الله عن المؤمنین الله میگه که راضی شده از مؤمنان ام مؤمنی نرخانده با امر زایتشانا پس انال بدبینی با الله بدبینی با کلام الله بدبینی با پیغمبران الله جل جل بدبینی با علما و شخصیتای اسلام فلانی نفر به خاطر ازی بد میبینه که مولوی هست به خاطر ازی بد میبینه سرش شخندی میکنه که ای عالم دین است حافظ قرآن است پس اینمی نمی بد دیدن آن چیزی که منسوب به دین است ای خودش چی سبب بی ایمانی و کفر میشه ششمی نقطه نقص کننده ای ایمان چی است؟ کسی که به مقدسات تمسخر و رشخندی و استحقار و استخفاف کنه بعضی از اشخاص چی عادت دارن؟ بعض از اشخاص عادت دارن که اینا چی میکنن؟ یا در بعضی از حالات مسخرگی میکنن چه قسم مسخرگی میکنن؟ والله به مسخرگی سلیب دگردن ویزان میکنن یا بخاطر خاطر اینکه من تمثیل میکنم درگردان خود صلیب ویزان میکنم. در مقابل مقدسات ای سبب چی میشه؟ سبب عظیم میشه که انسان از دایری ایمان خارج شود پس توهین، تحقیر، استهزا این کارا که از انسان از دایری ایمان خارج میکنه. قل الله و آیاته و رسولی کنتم تستحزیونه بگو برشان آیا شما به الله و آیات الله و به قیغمبران الله استهزا میکنین؟ لا تعتذیر شما عذر نکنین قد کفرتم بعد ایمانکم شما کافر شدین بعد از ایمانتان از این خاطر بعضی کساس به حساب مسخرگی و به حساب ساتری و به حساب فکایی سر قرآن فکایی میگن سر پروردگارم هم فکایی میگن سر پیغمبرم هم فکایی میگن هر وقتی که هرشی دانشان آمد امور میکنن از این خاطر اینا مسلمان های واقعی نیستن افتومین شکننده یا نقص کننده ایمان سهر جادو فالبینی و رمل اندازی هست در آیت شریف ما شما که و ما کفر سلیمانو ولکن الشیاطین کفرون سلیمان کافر نشد لکن شیطان کافر شدند. چرا؟ یعلمون الناس و سحر اینا تعلیم دادن برای مردم جادو پس جادو و آن چیزی که به جادو ارتباط داره فالبینی جادوگر با علم غیب الله در تکر است. ادعای علم غیب میکنه. قرآن تحقیر میکنه. جادوگر کافر است. کس که فالبینی میکنه کافر میشن. رملاندازی میکنه کافر میشه. فالبین وقتی که بر یک نفر میکنه بر از در آینده خبر میتوم. از کجا خبر میتی؟ طبعا ادعای علم غیب میکنه این انسان از این خاطر اینی سحر و جادو و فالبینی و اینی کارا انسان از دایره ایمان میکشن. و کسانی که پیش از اینا میرن و گپای اینا رو تصدیق میکنن و باز قرآن جنی فقط خون برشان نوشتا میکنند و برشان میگه که شما مثلا قرآن که با بای خونست بگیرین ایر دا تا نویزان بکنین و اعتقادات باطل پس اینی مردم ها هم و امرائز اینا کافر میشن هشتمین نقص کننده از نواقض ایمان چی هست؟ پشتیبانی و یاری کردن مشرک ها و کافر هست کس که از کافر پشتیبانی میکنه از یک مشرک پشتیبانی میکنه در آیات صرف چی میگه وَمَيَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ کس که پشتیبانی از کافر میکنه و میخواه که ای کافر برتریت برطریت نسبت به یک مسلمان فَإِنَّهُ مِنْكُمْ پس اینجا انسان باید دوست خود ولی خود مسلمان بگردونه و از مشرک و کافر برائت داشته باشه این الله لا یهدی القوم الظالمین الله یقینا که هدایت نمی قوم ظالمه چرا؟ هر کسی که یهود و نصارا و دشمنای الله را دوست خود قرار مید لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء ممن کافره را نباید دوست خود بگیرن. و کسی که کافر را دوست خود میگیره و او را چی میکنه با همراهی و دوستی و محبت میداشته باشه که دوستی و محبت ازی سبب دشمنی با مسلمان قرار میگیره و مسلمان بد میبینه دو دوستیش با همرای دوستی کافر است ای هم الله جل میگه که و مایه تولهم منکم فانه منهم اگر کسی اینا را دوست و عزیز خود قرار میدن و به هم رایز اینا محبت داشته باشن دی صورت ای چی هستن اینا هم از جمله عزیز نها هستند این هست دوستای عزیز از چی؟ از جمله نومین چیزی که ایمان یک مسلمان نقص میکنند سبب شکستنش میشن در که کسی اعتقاد داشته باشه که کس میتونه که از دین اسلام خارج شه چرا و مَن غیر غَیْرَ دینم دِینًا فَلَن يُقْبَلَ کسی کس که به غیر از اسلام به دین دیگه رفت فَلَن يقبل من. مِن از پیش از اون دینش قبول نمیشه دین باطل است و هو فیل من مِن الْخاسِرین این در روز قیامت از جمله خسارت کننده ها زیان کننده ها است کسی عقیده داشته باشه که مثلا بله انتقال از دین اسلام میتونه به دین بره و به رضایت نشان بده خود رضایت به کفر کفر است. از خاطر درست است که مثلا یک نفر یهودی از دین خود خارج میشه و یهودا میگن که یک چیز فردی هست کدام چیز ندارن و به حق بودن از او در باطل بودنشان در شک هستند میتونن که بره ده و دو بره ده بره اما مسلمان 100 درصد معتقد است به که با غیر از اسلام و با غیر از قرآن دین حق دیگه وجود نداره الله جل جلاله ای کتاب فرستاده تمام قوانین و نظام هایی که ضد قرآن است یا نظام های غیر مشروع و باطل هستن و اینا دین حق نیستن از خاطر این مسلمان وقتی که میخواد دینش دین حق است و اسلام دین حق است قرآن کلام الله است چطور راضی میشه که به ای که یک نفر بره یا یهودی و یا نصرانی و یا مشرک شوه ببانی ازی که ای مثلا آزادی دین است یا چطور است آزادی خود در جایی است که مثلا چهار چیز خوب باشد: سیب هم خوب است، ناکام خوب است، انگور هم خوب است و مثلا کیلا هم خوب است. چهار نفر،, نفر می باشد، اگر چهارش خوب است بر تو مفید است. این اختیار می یا ایره یا ایره یا ایره یک نفر میگه من ما سیب خویش می اما وقتی که اینجا شراب است و شراب حرام است و اینجا آب حلال است. پس در اینجا مسلمان حق اختیار نداره که بگه نه ولی من شراب اختیار بکنم. نه حتما باید آب بنوشی و از شراب باید دوری بکنی از این خاطر دین هم امی قسم است عدیان حق نیست که تو بو یام, حق یام حق است یام حق است یام یام خیلی اینی شو اختیار بکنم نه خیل. یک دین حق است که اسلام است و دیگرهایش باطل است پس تو مجبور هستی که اگر مسلمان هستی باید دین حق خودتان باشی و من باشی شک... با به یه حق مردم برسن و اگر کس از این دین خارج میشه لعنت دنیا و آخرت سرازی نازل میشه از این خاطر چطور میتونیم که به اون رضایت داشته باشیم دهمین ده شکننده از شکننده های ایمان یا نقص کننده ایمان روگردانیدن و اعراض نمودن از دین اسلام است و من اظلم و من, من ذکره به آیات ربیهی و کی هست ظالمتر از کسی که او آیات پروردگارش برش گفته میشه، ثم آرده عنها او را ذکر میکنه، ثم اعرض عنها باس بازاس آیات الله جل جلاله ای میکنه. یعنی کسی که اعراض از دین میکنه رو میگردن از دین و از عقیده میخاین که مسیحانی شیا مثل که امروز بعضی کسا در مقابل پول و در مقابل امتیازات و در مقابل سفر و ویزا میخواین میخاین به دین دیگه پردن و من اظلم و الله یعلم کی ظالم تر ظالم دشمن الله هست است میمنذکر به آیات ربه که اول آیات ربهش برش گفته شده بیان شده و دین حق فهمیده ثم اعرض عنها باز از دین حق رو می الله اننا من المجرمين منتقم ما از این مجرم ها انتقام میگیریم پس تو کسی که اسلام ترک کردی و اعراض کردی و به طرف دین باطل رفتی تو مجرم هستی و الله جل جلاله روز قیامت از پیش تو انتقام میگیره الله جل جلاله بر ما توفیق بده که عقیده اسلام بفهمیم به و عقیده عمل بکنیم و به و عقیده اسلامی پایدار باشیم و هیچ وقت به خاطر مال و به خاطر چوکی و به خاطر منصب بطرف أديان باطل غلط ناريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته